در مورد حالا ایام محسنیه و داستانی که حالا مربوط به سخت حضرت محسن هست میخوان زمانش رو بدونن تو این ایام اصلا لازم نیست زمانش رو بدونیم اگه لازم بود به اون میگفتن علما خود حضرات احمه علیه مسلم افراد و, و تفریز خوب نیست هر جا که احمه به ما راه نشون دادن جانشون نشون دادن وقت گذاشتن من باید پیروی کنیم اونجایی که سکوت کردن من باید سکوت کنیم اینایی که تند روی میکنن معمولا یه جاهایی کاملا سکوت میکنن و از حرکت میفتن مثل بنزین. چطور یه دفعه علاو میگیره میره بالا سریع هم خاموش میشه پشت ندارم